الحمد <سؤال> لله رب العالمين الله يا عرض کردیم بحثی رو که مرحوم شیخ مطفح فرمدن راجب به این میکته و اعضای میکته هست و اجمالا خب ادعای اجماع شده که بی ایش نیست بحثی رو که مرحوم شیخ در اینجا مطفح فرمدن نازره به کیفیت استدلال و نهره استدلال و نتیجه گیری خلاصه نتیجه گیری اینه که در فرض قائل باشیم به بطلان بید و حرمت بید نیفه این بطلان و حرمت دار مدار انتفاع یا نه تعبد خاصی نه علا کل تقدیرین نتیجه مسئله فرمون میکنه. برای روشن شده مطلب عرض کردیم که یه مقداری اولا روایات اولا آیات مده شد و بعد هم روایات یه حدیثی هم هست که دیروز نخوندیم حالا امروز میکنیمش و حاصل اون حدیث درباره باری استخانه میکنه هست البته اون در باقی استخانه روایتی هست که سنیا نهار کردن از مثل ابو آبود و دیگران حالا باقت نظر سند یعنی تایی الاسوان سوان جزوه قلام های پیمنبه آل اشترال فاطمه قلادتا من حسد و سوارین من آج دو یک قلاده یعنی گردن بند از اثر جود از و اثر همون به اصطلاح رابط رباط تعالیم میگن در زبان فارسی یا یعنی اعصاب هم میگن اون چی که ها رو به هم رفتیده شد یه ماهیچه پسید مثلا لیکن اینجا گفته شده که در این اصطلاح مراد از عصب گردنبنده بوده که از یک نوع ماهی شده همان هرامگوش بوده از دریا میگرفتن یک نوع حیوانی بوده حالا ماهی نمیدونم حیوانی بوده که دندانهای خیلی صفیق داشته اون دندانها رو میچندن و به گردنبنده مثل مرواری به مثلا به گردنب خب این بحثی که اثر به در این اصطلاح که مثل دندان ها باشه جز اجزاء میته هست لیکن خیل و فروشش نشکال نداشته چون پینام بفرانه اشتر یکی هم سواره سوار دستبند رو میگیم اونی که توی دست میکنن سوار میده من آج آج البته الان در اصطلاح ما واضحه دهیه واضحه دندان فیله لکن خب این همون شبهه معروف داره که این دندان فیل اینجا مراد نیست سوار از آج این آج در اینجا علا خلاف اون معنای ارفی معنایی که به ذهن انسان افزاد نمیار این مراد از سوار آج در اینجا اون لاک لاک پشت مرادشون لاک پشت از آج تفسیر شده در خود کتب اهل سنه تفسیر شده بعد روایت دیگه داره کان رسول الله تو بمشتن یعنی آج این آج منان دندان فیده یعنی اقزایی که لا تهل اون آج غیره بله لکوت چون دوزه یا نه همین اشکال همون همینه حالا بعد این یک احادیث این دو تا حدیث‌ها را دو طایفه حدیث یک طایفه در باب دباغ بود که دباغی نوشت تحقیق البته در باب دباغ عرض کردیم دو تا متن هست ما نش اضافه به قل احا و فقط طهور داریم یک متن داریم ایما ایما دباغ ایما احاب دیگر فقط خبر اینم داریم فرق بین این دو تا البته واضحه ایما اگر باشه معاش عموم استغراق در اینجا هر اهابی که باشه و لذا حدی از اهل سنت ایما, ایما فتوا دادن گفتن پوست هر پوستی که باشه میخواد معقول لهن باشه میخواد معقول لهن نباشه بلکه فتوا دادن حتی اگر محرم الاکل هم باشه مثل سگ مثل مثلا خنزیر خارج، مثل سگ هم همینطور اگر پوست سگ رو هم در باگی بکنم پاک میشه اما اگر تعبیر این باشه ادا دو به قل احاب فقط تهو ممکن است مثلا یونه احاب در اونجا خصوص احاب و بوی مثلا این دو تا با هم دیگه فرق میکنن ایما دهاب تهاب دوبق فقط تهو این عموم داره و شمول داره شامل تمام انواع پوست ها میشه حتی پوست سر به خلاف اداد دو بقل احاب و فقط سمو اون شمولش برای پوسی سر و اینها خیلی روشن نیست این راجه به این دسته احادیث در مقابل این احادیث از کدر حدیث بسیار معروفی رو دارم احل سنت این حدیث یه خیلی محل کلام حدیث اسمال عبدالله بن اوکیم خن نبی این تعدیمشی لا تنطف امون المیتته به هابن ولی اصل و از کردن این مفصل ایشان داره متعرض شدن بله بحث های راجع به سند دارن که های اصلا این سندش درسته درست است و نسبت به تاریخش هم دارن مثلا در وضع قل قبل موتی به شهر او شهرین حال البه همی و جایفی لفظ آخر قبل موتی بربعینه بله یومه. از مختلف هست نسبت به بله چیز یکی از متون خیلی عجیب این روایت که تبرانی در معجم وسطش نهار کرده قوسطش این طوره رسول الله و نحن که ارد جوهینه اینی کن تو رخست و فی جلود المیته خلا تن ست اومن المیتت به جلدن و لاعصن خیلی عجیبه فی دیگر از اون مصنع بسیار شازه، من برای شوزدش کردم. و نوشته که راهی این شخصی شاختیس بنامه فضلاته بنم مفضل مفضل بنم مفضل. از مصری بوده، از رئیس پلیس بوده پلیس بوده یکی افراد. شورت بوده و شرایخورم بوده. من نمیفهمم کاری اینها به کجا؟ بله. درست نوشتن کانی یه شوال مسکین و یه او شاتن فل ماتشی. رئیس پلیس همونی. از این ندارم. مطالبشون در این مسئله تا کجا ها رفتن دیگه من نمیخواد دیگه بعد دیگه مفصل بحث های راجع به این مطلب هست که من آیون خودشون مراجعه کنم. از جمله روایاتی که هر روایاتیست که ابو داود و ترمزی و نسائی از بلی اسامه این غیر اصامه معروفه امن رسول الله نها انجلود سبا اینم هست نه رسول الله انجلود سبا البته مطلقه توی کتاب ترمزی فقط آمده انتفترش باز از روایاتی که داره از جابر انعبزویر انجابر جابر ابن عبدالله انساری انرسالی این قیل از حدیث عبدالله ان رسول الله قال لا تنتفه او من المیتته بشی اینم نه از روایات دیگری که در مانهنفی ممکنه اسهل در بخوره در سنن بی حیث خالص رسول الله به ابن عمر منتهی میشه قال رسول الله ادفن و اشاء شعر بدن و الاغفار فانه ها میتتون مو و خون و ناخن رو هم دفن بکنید البته ظاهر مال بشر باشه چون اینا هم میته هستند این به روایاتی که اهل سنت در اینجا داره برای روشن شدن مطلب اجمالاً یه مقدار اقوال اینها رو هم ببینید که اینها درباره میت چه مقدار در اقوال به اصطلاح با هم دیگه اختلاف کردن اختلاف بسیار شدید ها این که اختلاف کنند لا اله الا در این کتاب به صلاح مجموع که مؤلفش شما است مرتب اقوار ذکر کرده <تصفيق> دارم به فهرست نگاه کنیم نه آه من گوهی وقت گفت که آل زود پیداش میکنم این واضحه دیگه الان مثلا در اشاره می ده در همین صحفه که در صحفه لا رحمن و رحیم. دارم خدا بحث عنوان بابش آنی است اما میتر اونجا متعرض شده در شهر مقصد در صفحه دیگه سه این چاپ رو جمعه دادم جلدی صفحه دیگه با عنوان جلود میتر. هي صلاه و مداهر احدها لا يط هو رب دباغ شيء من جلود که كعصا دباغ و دباغي هیچ اثر نداره نماروي عن عمر بن الخطاب و ابنه و عائشه و هو اشهر روايتين احمد مراد و روایتون عن مالک این قول اول که دباغه هیچ تاثیر نداره الله تعالی خواهد آمد که روایات ما هم همینه. حسولا من سابقا عرض کردم و در ذهن روادات باشه در اصطلاح خود اهل سنت فقه مدینه و فقه سنت میدونم و رأی مالک تقریبا همین اینجا گوثه روادات من مالک و به عمر هم همین نسبت داده شده که در باقی هیچ اثر نداره. در بعض از رواث ما داره به این دو به هفتاد غره 70 در دباغ هم پاک نمی‌شه حالا بخونیم اقوال و اطلاعان از صوریا اجراء شدین تو درسیت بخونید رو به دباغ جلد و معکول اللحم بعض معکول اللحم باشه دباغ پاکیش میکنه دون غیره و هو مذهب الاوزائی و ابن المبارک و ابی داوود و اصحاب ابن راهدی از بزرگان کوفی‌ها اصحاب ابن راهدی پس باید دو تا مطلب بشه یکی اینکه خود پوست خود اون حیوان صلاحیت داشته باشه یعنی معقول لحم باشه دو اینکه عملیه دباغ انجام میشه اگه میگه باشه اشکال این مسئله رو ما داریم در تزکیه داریم نسبت به غیر معقول و معقول لحم که در مانعیت صلاح اشتباه باشه یعنی اگر حیوان معقول لح نبود پوستش مانع نماز میهواد ما دباغي بشه نشه تسکیر بشه نشه اگر محکول و لحمود با تسکیه اشکال نداره با دباقی نداره شبیه این ما داریم قول ثبامیت رو بهی کلو جلودل ال میتر الا الکل و الخنزی رو المتولد منه همان و اگر اونی که از سگ و خنزی میدونیم و هو مذهب اونا که تمام تمام جلود پاک میشه و حکاها ان علی ابن عبی طالیه این رو من سابقا ارز کردم حالا اینجا اگر احتیاج کرد اینجا خیلی کار مشکلیه. ما یک مشکلی کلا در فرق داریم. این اختصاص اینجا نداره. مثلا مذهب اهل معروفه که میتر رو با دعواش کافی نمیشه. اما از علی بن ابی طالب نارکن که کافیه. خیلی عجیبه. الان ما در کتب اهل سنت اختصاص اینجا نداره، ما این بحث کوبری در خدمت عرض در کتب اهل سنت فتوایی رو از امیر و مومنین نقلی کردن که الان ما خلافش رو میگیم دقیقا در ما مثلا در اینشالله از خواهیم که احتمال داره این فتوا چون از ابن مسعود داره در اصطلاح اهل سنت فقه کوفه رو فقه ابن مسعود علی نبی عبی طالب میگونه اصطلاح اهل سنت اینجوریه چون عبدالله ابن مسعود زمان خود عثمان آمد کوفه اصطلاح بیت المال و بود و بعدم که امیر محنی صلی اللہ علیه و کوفه نظام معتقدن اهل سنت که اصلا جمع عمومی کوفه متأثیر به فقه ابن مسعود و علیه ابن عبیتاله اون, اون وقت احتمال داره که اهل کوفه اینو رو نقل کردن از بن ابن طالب. چون انشالله خواهیم گفت اصلا در روایات ما خواهد آمد که حضرت سجاد آدم صلی اللہ علیه زود سرمانی خوردن سردشون بود به اصطلاح و برای همین جهت در زمستانه ها پوست پوستی پوستی پوشیدن وکن می گفتن پوستیلی که در حجاز هست در مدینه هست در مکه هست این خیلی نیست. پوستی رو از ایراق میارن. از عراق که پوستیل می هزار حضر وقت نماز او رو می کندن. نه فقط پوستی می لباس زیرش هم می به برم حضر گفتن خب شون شون تو. حالا چون اهل عراق دباقی رو کافی میدونن دباقی رو بر پوست کافی یعنی این محتمله که این پوست ها میته باشه احل... یعنی این پسر فتر... خوب دقیقه هموندید اهل حجاز دباقی رو سر تطهیر نمیدونن رواهد داریم میخونیم اینشارا میخونیم رواهد شد در رواهد خود ما حالا آیا این واقعا ممکنه که در خود کوفه همین که به اصطلاح مراد اراقه در رویت داره آیا در خود کوفقه غیر از اینکه که فتوار این بود آمدن این فتوار هم به امیر مؤمنین و به عبدالله و مسعود هم نصد دادن حکوه و ان علی نعوی طالب و مسعود حالا این ریشه هاش کجا هست چیه چه چی کار باید کرد و تا تاثیرش تا چه مقدار پیش ما بوده من اینشالله تعالی اگر خداوند توفیق توفیقی در بحث مربوط به سکونی که ان تو این تعالی بحث ما به واسطه سکونی خواهد آمد حالا ولو انفراد سکونی نداره اونجایی که انفراد سکونی هست متعرض میشید یه عبارتی و مرحوم شیخ طوسی در اوده داره که اگر نزلت بركم حادثه تن لا تعلمون و حکمها فتعو قابل بلد و اون دور ها مارواه و علی بن ابی طالب دقیقاً اونجا هم داره همین رو اون روایت هم فعلا فقط در کتاب شیخ طوسی آمده هیچ جایی ای که در کتاب و نقل کرده احتمال دویم مراده از قاضیه بلد قاضی خود کوفه باشه نه هر قاضی در هر شهری و این هم سررش این باشه که اهل کوفه اده از احکام را از امیرمان اونی نقل میکنند امام صادق مخواهم بفرمونی که اگر در مسئله از ما چیزی به شما نرسید ببینه همون قضات کوفه همون اهل کوفه چی از علی ابن عبی طالب نقل کرده بو اعم یه حاله و باز اینشالله یک تفسیری دیگری من عرض خواهم کرد ظاهرا ملعلم علم عند در میانه های در نیمه اول قرن اول سال های 40 تقریبا چهل و خرده قبل از سی و هستونو کتابی رو در کوفه باعث کردن دادم که این کتاب از نظر شیعه خیلی مقبول واقع نیافته بود من روز زیاد تاکید ندارم احتمالی ما دادیم که این فتاوای علی بن ابی طالبی که نقل در اون کتاب بوده حلایه حاله این منحصر به اینجا نیست ما اگر بناس در فرد دنبال واقعیات بریم ایل از مسئله حجیت اینها روش بحث بکنید این واقعا قابل بحث چیز غریبی که مثلا الان از عمر در کتاب ها نقل کردن که جلد پوست میته تاهر نمیشه با دنباقی و از علیه من عبیسالی مرکنی که تاهر میشه با دنباقی به استثنای کلو خنزید حتی غیر معکول الله لعن. دقت می‌کنی؟ وقت میاد تو فقه خود ما. حاضرین فقه. درست اینم روایت ما عکس اینه. روایت ما از امام علی علیه تو عمر رو فک کرده. چه معنی در خیلی عجیبه. این همون چیزیه که خود سنیان گواهی دارن که اینا مثلا به فتو علی نبی علیه و مقید نیستن. خب این اینجوریه دیگه الان مشکل بلاتکلیف من. همینیشو مثلا براتون نشون بدم؟ که این ما این دو داریم این اختصاص به اینجا نداره خودشون کارا دادن کردن با عمر یک چیز نسبت دادن به علی بن ابی طالب اخ چون ما مهمه ما همون هر عمر رو گفتن نه حرف علی بن ابی طالب خیلی شما احساس تعجب میکنه. حالا به هر حال ان شاءالله تعالی خداوند توفیقی بده چون خود این عقیل صادق فکر میکنیم مثلا ریشه های مطلبش یک حدیث پیدا کنیم ان بعد در یک توضیح ببینیم به هر حال قابل تامل به مجرد این که بگیم مثلا سنیا نرغب کردن ارزش نداره اینطور نیست نه باید روش حساب کرد ور را به چهارم چهاروم یت حروبه جمیع الا خنزی یعنی سنگ هم پاک میشه نگاه خنزی و هل من هبا عبی حنیفه که از مزرگان کوبیان که قصه معروفی هم کشینی ماله همینه دیگه فالش شیخ جلدل کرده به باقی مورد همینه بل خامس یک هر الجمیع بل کل واخندی حتی خوب پاک میشه الا انه یک هر ظاهره دون باطبیه سى استعمال کلیاب دون رث و یصلى علیه فرشش گفتن لا اله یصلى فی و هو ن هو مالک البته ما مالک اختلاف داره امروز اجلیام می خونن و سادس قول هفتم ششم رو به دباغ جمی اجلود المیت بلکر ظاهرن و خنزیر ظاهرا و باطنا قال هو داوود و اهل ظاهر و حکاح الماوردی عن یوسف اینا عمدشون ایما جلدن دوقه فقط طهور عمدشون ایما نه اذا جلد الا ایما احابه اصطلاح اهل ظاهر در کتب اهل سنت ظاهریین در قطعه اهل سنت شبیه اخبارین ما هستن اینا چون تمثق شدید به زواهر الفاظ میکنن این به اینها معروف شدن به ظاهریین یعنی یک مکتب اخباری صرفه تو این مکتب شدیدیه در اهل سنت و معسیس این مکتب هم داود ابن علی است که اوائل قرن چهارم بوده لیکن از امه این شنگ که این صافن خوغل آده است ابن هزمه ظاهری ها هم ظاهریه ظاهری در عالم اهل سنت عمل به اجماع نمیکنند چطور ما اجماع رو دلیل مستقلی یعنی حجت مستقلی که از مصادر تشریع نمیدونیم ظاهری ها هم نمیدونن ظاهری ها به قیاس هم عمل نمیکنند این ظاهری ها خطا که فقط به کتاب نسنن. و سنت و اعتبارشون اینه که ما کان ربک الکه نحد زیاد میتکرار میکنه و ما کان ربک یا هر در کتاب و سنت آمد در هم خیلی هم خود ابن حضر واقعا امامیست در حدیث خودش انصافا در حدیث اشتباهات داره هر انسانی اشتباه داره و که زنه شانه در معرفت الحدیث رجال و این رأی ظاهر ظاهری ها در اسطلاحون ها اینه کتاب ابن حضر المحلان انصافا کتاب نافعیه بسیار کتاب نافعیه خصوصا از بیدگاه یک نفر به اخباری صرف مثلا اگه در روز آمده کسی که شراب، شراب رو به الله شرب خرد میکنه 40 روز نمازش قبول نمیشه، او اخذ به ظاهر کرده گفت اگه شراب خورد نمازی 40 روز قضا بکنه، قبول نمیشه بود قضا بکنه. خیلی توسکاتش به ظاهر فوق العاده قویه. و از عجایب واقعاً مجل اهل بیت همش بود یک هر کی از شراب عجبی در بحث فعلم و انماغنیم که اون غنیمت رو ایشون من منفعه میگیره. واقعاً مشهور علسودن کل ای که برای انسان میاد نه از عجایبه نوست ابن حزمی که اینها را ظاهری، قبول کرده که غنیمت مطلق وستا به ینتفع و به جلود نیت بلا دباق اصلا جل مطلقا جایزه و یجوز و استعمالها فرت و اون دباقی هم نمیخواد حکو معن زهری بگر کردیم؟ این که تعبیل ایشان حکوهان زهری و اونجا حکوهان علی و نوی طالب اشاره به این باشه که سندش خیلی معتبر نیست، آن نهاروی کردن خب من دیگه نمی‌دونم حالا بعد ایشان وارد بحث‌های بحث های دیگری شدن که بله مفصل که حالا این هر چیست و اون چیست و بله. بله دیگه چون بحث استدلالی است من دیگه نمیخواد بخونم تمام اقوال رو عدلش ذکر کرده همین قول هفته که از همه عجیب تر بود و اما زهری فهده جبروار از اینجا از حدیث مرواز هلا اخدتون احابا ها بها. به ها ولن بیاده تر دباق ذکر نشده این هم اجمال کلامی که راجب به این قسمت البته خیر از این دسمت هایی که مربوط به انتفاع بود یه فروع دیگری هم با تدریجن خود اهل سنت پس معلوم شد که در فقه اهل سنت هم به اصطلاح مسئله چیز به اصطلاح مسئله تهارت و نجاست و اینها مطرحه و اضافه بر اونها مسئله پوست پوست میته که آیا میشه در اون پوست نماز خون یا نخوند اون خصوصیات رو آیون مطرح کن و اما در غیر این کتاب سیر از حالا اون چیزهایی که من ارز کردم بلا بلا حالا نهش می‌کنم. یک اشاره ای هم، یک که. حالا برای اینکه این مطلب هم روشن بشه که بقول ایشان مساله و کیفیت دباغي این در این کتاب خود باز همون کتاب نوری این دو مثلا باز میگردیم به کتاب نووی در این شرح صحیح مسلم میگم از کتاب های نافع اهل سنت انصافه این کتاب بسیار او بیه سعی مسلمان با چاپ نع... این چاپی کلامی نرم کنم در حاشیه شرح نووی رم داره نووی در این شرحی که داره اون احادیثی که ما خوندیم خوندی نمیخواد من بخونم بعد ایشان حتا مذهبی را که در همون مجموعه نقل کرده مختصرا در اینجا نقل کرده بعد از اینکه اون مسائل مطرح کرده چند تا از فروع دیگر مسئله هم آورده با عنوان تصدیق در این جلد دوی ش... مسلم با شرح نبابی صفحه پنجه و پنجه ایشون میگه یجوز و دباغ به کلشه این یعنی شف و فضالات الجلد این هم دباغی که سوال پرده هرچی دی که خوش بکنه چون تا ترهست در معرض فساده هرچی که خوش میشه فاسد نمیشه و یو او و یم نعام ورود الفساد علی و داله که کشت شعب نوشته شده شب شب کی میگن روش شب نمیشه شب همینی که ما میگیم در نشدیم به دین ذمه میگن ذمه زاق میگن یک ماده سفید رنگی هست که رو خون می‌ریزند برای که زخم بنده و قرص که از کلام قرص با و وا و این چیه قرص به اصطلاح یک نوخاره بوته خاره اینو خوش می‌کردن به نحو سخت می‌کنند با اسابیز تا کندی میشد بعد روی توس می‌ریفتن و قشور رمان و پوست انار به اعتبار خود انار، خود انار که ما میخوریم یه حالت زده عفونی داره. هر میوه یه هر درختی که یه قسمتشی حال داشته بشه، غالباً بقیه اجزاش هم داره. مثلا ریشه انار رو می‌خورن برای مثلا کرم معده و یه چیز واقعا نافعه. پوست خود انار هم نافع، برگ خود انار هم. تمام اینها حالت زده افونی دارن. پوست خود انار یعنی پوست خود میوه پوستشه که خشک میکنن می کووبن اونم میریزن روی به اصطلاح پوست حیوان هم زدع عفونی میکنه هم خشکش میکن و معش به زاره که من اطیت تاهره درست شده میخواب مسئله که این ولا یحصل به تشممیز اندنام آیا در باقی همین کافیه که پوست رو که جذا کردن مرتب بزن خش خوش بشه مثلا وقتی که آساافقی خیلی تنده خوش میشه نه میگه نه این در نیست این خوش کردنه. اون یکی که در روایت داریم در باغیست. در باغی انون است نیست که انسان یه کاری توش بکنه. اون حالتی که فساد برداره داره. و قال اصحاب ابی حنیفه یحسد. قضیه من روشن شد. خیلی از خود مسئله باز فروعی مطرح شد. آیا در باغی با خوش کردن پیدا میشه یا نه؟ خب طبعا روشن شد که ما چرا در فقه ما مثلا شما توی کتب فقه ما این فرع رو نمی‌بینید؟ حالا دباقی با خوش کردن در مقابل خرشی تیزه می شوند چرا؟ چون اصلا دباقی پیش ما متحر نیست دباقی مظهر نبود دیگه این تفریعاتش خود به خود مطرح نمی ولا و لا به این دناب تراب از خاک ها این حالات خارد دارن و رماد رماد که سریع خوش می سر چون سوخته از حالات تندی داره به گلوپدشون و الملح علال اسف الجمیه این هم معلوم پیش خود ایشون چون یه اندنام راست شافیه چون نوی شافیه مصدقی و هل یه سال به عدیلیت نجسه چون شما سوال فرمونید میخوام بگم خود اینا مفصل این بحث رو اغورده هم. و هل یه سال به عدیلیت نجسه اگر دواهایی که نجس باشه مثل درغ حمام یعنی فضه کفتر که اینا نجس میگرد شما نجس و شب المتنجس زمه ای که متنجس باشه فی از صحبه همه در اصحاب حصوله و یجب قصله بعد الفراق من از دباق به غیر ولوخان دبغه به طاهره اگر با یک شیعه طاهری دم باقیش کردیم فهل یه تا جهلا بعد الفراق فیه وچهان و هل یه تا جهلست امال ما فی فیه اول دباق فیه وچهان دقیقی کنیم خیلی فر فر بر فر حضرات آمه مطرح کرد یه بقیه شه بله نمیخونم؟ بله و ادا به دباغ جازل انتفاع و به دلاخلا اینم فرعه چون در روایاتشون تهوره آمده سوال و هل یجوزو بی اوهو؟ حالا که پاک شد بی جایزه فیه قولاند شافعی اصحا ما یجوز چرا این م مطرح کردن؟ چون یک رووارددارن که انله هررم به میته میخوره و انشاالله تا حالا اون نرسی ما به زنگ نرسیم. صحه ندارن تو واع صحت اسم میته نداره اما حرمه دارن که میخورد این اداشتشن تاقا توضیح معذله میکنه. ل شافه ای وجه ها قولان شافی ص ما یه جوس و هر یه جور رو رو هو پوست روبی شخور چون در بعضی حالا دی می دوشون و این پوست رو که حساب دباغي کرده بودن تو دیگه می داختن مثلا خیلی میجوشه نرم میشد مثلا می خوردن مثلا در حالاتی که گرفته شده داشتن که خوب بلایش میگه و هل یجوز و اکله فیه ثلاثه اوجوه او و اقوال اصح و حالا یجوز طبعا این فرها مش که دونش پیش شما نمیاد بیعش میاد اما این فر اکل چون در باقید اثر نداره و اوله اصح حالا یجوز به حال و سال یجوز و سال یجوز و جلد معکول لا ولای جوز و غیبون فرعون و اداته را الجلد و به دباق فهل یک هر شعر را علیه طبعا الجلد الان تو بحث اصول که بحث قبلی بود آدمتش داشتن این بحث اطلاق مقامی میگه جلد پاک میشه خب پوست اونه پشمش چی؟ پشم میگه اونه هست شما میدونی یا روی پشم مثلا یا روی پوست پشم هست مثل بوست هم. یا مو هست مثل بوست یا کرک هست مثل شطور یا پر هست مثل مرگ اگه پوست مرگ بکنن مرگی باشه که میته باشه حالا پوستش بکنن فهریت هر شعر شعراللدی علیه تبعند الجل ادا قلنا بالمختار ادا قلنا بالمختار فی من هبنا ان شعرالمیتت نجسون فیه قولان شافعی اصحوهما و اشهارهما لایت هر لاند دباغ لا یا و بخلاف الجلد قال اصحاب لا يجوز استعمال جلد المیتر قبلن دباق فل اشهاء رات رفته و یجوز فل اشهاء یابسه ها این راجع به اده از فرو و خصوصیاتی که ما در این ده. حالا چون بحث ما اساسا بحث بیعه از اینجا یواشواش وارد بحث بیعه هم بشیم در کلمات اهل سنت یه مقداری از روایات اهل سنت رو و کلماتشون رو هم که نهاز داره بله البته نمیگه پلیان طاهر شو نمیگه بله خب چون جلش گفته طاهر میشه یه همچین باشه عجب می شه ها پیش ما به خاطر اون جهتی که لا ته ولله هات اون ما بله اون اینطوری ایشان ابن هزم در جلد یک از محلا صفحه صده هیچده به بعد ایشان ستواش اینه و تطهیر و جلد المیت ای میتت این کانت ولو انها جلد و خنزیر او کلب او سبع او غیر دالک فه اینهو به دباغ و دباغی پا به ایشه این دوبغ تاهرون فه ادا حل بی او و سلاط و علیه تا اینجا رو شد که پس مسئله ای که در قرآن آمده تحریم بود فقهها بحث نیازت رو مطرح کرده بحث مانعیت نماز رو مطرح کرده بحث و حرمت بیگ رو مطرح کرده و کانه کجیلد مازدکی می مایه هل وقتلو الا ام نجیلد می تا المذکر لا یهلو اكلو هو به حاله خوردن میشه و میشه خب البته در کتاب مجموع استثنان نداشت اشون استثنان هاشا جلد انسان پوست انسان به خصوص پاک نمیشه فه اینهو لا یهلو اصلا جایز نیست دباقیش اصلا کندن پوست جایز نیست دباقی میشه ها نه چون تمام این مراحل رو از مثلاق مسلق گرفتیشون کندن پوست دباقی پوست تمام اینها عنوان مسلق داره که حرامه لا یهلو انید بغ ولا انیس لخ ولا بند من دفنی اصلا همه نداره این کار رو بود این همون اصطلاح معروف که عمر بشه موضوعی نهی بشه وقتی عمر آمد که دفن بکنید یعنی غیر از دفن بقیه کاران هم نوعه. هیچ راهی در استفاده به امکان کافرم و سوفر المیته و شعر المیته و ریشوها و وبرها باشد شد سوف که پشم شعرم که موس صوف در مثل بوزفن شعر در مثل بوس ریشم که پر باشه در مثل مرغ و اینجور چیزا. و بر هم کرک مثل شطر صوف المیته شعرها ریشها و برها حرامون قبل از دبا حلالون بعده و عموها و قرنها مباحون کلو اونا تابع به سال دباقی هستن اما استخان و شاخ ولا یهلو بی علمیته انتفاع، انتفاق در اصده ها ولا شهنه ها درسته این فتوای خود ابن هست غلط کردیم این چطور حالا بین رواج جمع کرده آقایان در اونجا بله بعدم ایشون قال علیون مراد این, این علی خودش مؤلف خود کتاب یعنی حضرت علی رحمته ذهب احمد ان تهول لا استعمال جلد الميته لان دبغ این همون فتاوی اهل بیت رای اهل بیت نظر اهل بیت و از کهی این مطلب رو هست چیز و امده شدن کتاب علیم رسول الله تن تفویض میکنه به اهاب و این رو در مدینه نقل کردن؟ بله بله بله از بله. بله. بله نه خود احمد بن همین بردادیه از این کنندگان بله بعد داره بقال ابراهیم و نخیعی که از بزرگان اهل کوفه است، فی جلود البغر و القدم تدموت فتود برقال طبا و طلبست و ال اوزائی فقیه شام معروف قبرشان احمد در بیروتیشون اباحت و بیعا وعن صوفیان ثوری یعنی جلود یعنی نکل به میتر اباحت و سلات فیه ها هم برداشته میشه وعن لیس فقیه معروف اهل بس تو ابن سر اباحت و بیعا لیس ب و ان سعید ابن جوبر ها آقاها ها و عباه زهری جلود نمور و وحتج به ما جا نبیفی جلدل و ان عمر ابن العزيز و عربت ابن زبیر و ابن سیرین مثل داله پس معلوم میشه این تهارت رو و حلیت برای پوس رو فقط زهری قائل نبوده عمر ابن العزيز و عربت ابن زبیر و ابن سیرین هم محمد ابن سیرین اینا قائل بودن این سن رو اینه و قال ابو هنیفه جلد المیته ازا دوبر و ها و عصبها و عقبها و صوفها و شعرها و برها و قرنها لا بأس بالانتفاع به کل دالک و بیعوه جائزان و سلاس جلد ادا ازا دوبر جائزان ای جلدن کان هاشا جلد الخنزیر اگر هاشا و نه استثناء باشه فعل باشه جلده بخونیم و اله به کس بخونیم به جرد بخونیم و قال مالک لا خير في إعوام الميته هي ميته ولا يسال لا في شيء من جلود الميته ان دوبقت این فته مالی هم فته مدینتی دان وام صادقه ولا يحل بيعها اي جلد ان كان تقر فرضید ولا يستق فيها آب کش نمیشه مثلا باش برای مثلا دل بساز برای سارکش بشه لكن جلود و ما کل نحم و اداد و بغد مثل گوستن جایزون قعود علیه ها و انیو غربل علیه ها چون سابقا می که از قربال ها مثل که با فلز درست میکنن با پوس درست میکردن پوس رو میکشیدم بس توش سلاخ سلاخ یا یو قربال یا همین چی میگن الان در لعال و فاسیه چیزی چی باید و کره الاستقاعفی ها با آخر نفسه وجود و گفت من ازالک در همین میکه من توش آب نمیخورم خورم ولم یه هم غیره گفت این اران نفسی داره وره جلود از سبا اداد دو بقد مباحتم دل جلود سال غربله ولم یه ره جلد الحمار و این دو بگ یه جوز استعمالو ولم یه ره استعمال قرم المیکه وله سنوه وله غلف ها لف غلف یعنی غلف ونه سمش و لا ریشه ها و عباه صوفت میته و شعرها و درها و کداله که اینو اخیدت منحیه اینم ما داریم که اگر از زنده گرفته بشه حکمه حکمه میترم من اصلا اقوال بی مراجبه از هر داری که میره تو خودمون نسته همین مقدار برای اقوال احل سفر نسته الله اللہ علیه و محمد و آله